بسم الله الرحمن الرحیم نشسته اهمیت نسخه پژوهی در فرآیند استنباط حجت الاسلام و نوسه رضا مختاری بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاۃ على رسول الله و علی آله و آخره شد که خدمت دوستان عزیز برستم و مطالبی را با هم مذاکره و مقایسه کنیم که صحنته چار تو کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ما ایران از حدود سال 230 هجری اومده تو اروپا بیشتر از 500 سال پیش آثار چاپی هست و سابقه چاپ داره. مون تا در کشور اسلامی حالا باست. کشور ما تقریبا سال 230 هجری شروع کردن به چاپ کتاب و صنعت چاپ وارد شد و اولین کتابایی هم که چاپ کردند یا اولین کتابی که چاپ کردند رساله های جهادیه است. قضیه جنگ های ایران و روس علماشیه رساله های جهادی زیاد نوشتن محروف شده رساله های جهادی اولین کتابایی که چاپ کردن رساله جهادی است. البته مسیحی ها و حرامنه اصلاحان از دوره ای ماشین چاپ داشتند و شماهلی هست برین منطقه در افتیار مسلمان نبود. بله بله بله دوشد. دوشد. دوشد. دوشد. دوشد. دوشد. دوشد. دوشد. دو که میگیم پنج و که <تصورت> بعد از که صنعت چاپ شد و کتاب های حدیثی و فقهی و کتاب های علوم اسلامی چاپ شد دیگه رسم این که علماء علاوه بر نسخه چاپی به کتاب خطی هم مراجعه کنند کم کم ریشه کن شد و افتاد که می‌گیم کم کم به خاطر اینکه که هنوز هم یعنی زمان ما هم خیلی از فوقها ها به نسخه چاپی کتاب حدیث تکتفانه میکنن مگر این که کسی مقابله کرده باشه با نسخه خطی معتبر یا خودشون مقابله کنن اصلاح این طلاع شوبری حفظ الله تحذیبشون رو تحذیب ده جلی شیخ ترسی رو خیلی سال پیش شاید سال پیش با یه نسخه خطی معتبر تحذیب مقابله کردن اختلافه رو همه گوشش نوشتن و اون نسخه رو ما هم از اون گرفتیم, عکس گرفتیم، موجوده، داریم. به خاطر اینکه ما باید بر اساس کلام معصوم علیه السلام فتوا بدیم، استنباط کنیم و امثال ها از کجا مطمئن بشیم این حدیث به این شکلی که تو این کتاب چاپ شده این مطابق اون چیزی است که مثلا کلینی رحمه الله یا شیخ توسی علی الله ما همو مگر اینکه مصححش یه آدم فاضل دقیق نظر فهمیده ای باشه که اول به نسخه های خوب مراجعه کرده باشه سانیان عادل و سقه باشه و اختلاف های مغیر معنا رو ثبت کرده باشه تو کتاب ولو اگر سابقا نسخه خطی به اصطلاح کسانی که کتاب میخواستن معمولا علما خودشون وقت و فرصتی که خودشون استنساخونن نداشتن استکتاب میکنند استکتاب یعنی به کاتبی به ناسخی میگفتن این کتاب بر ما استنساق کن اجرتشو میدیم از اینشو میدیم اون این خیلی بی سواد بودن یا سریع می نوشتن رو گاهی وقتا یه صفحه یه سطح جا می انداختن این نسخه اگه نشه با اون نسخه اصلی اعتباری نداره شیوه علماء از قدیم این بوده که معلف که نسخه ای رو تعلیف میکرد بعد شاگردان نسخه برداری میکردند با نسخه خود مؤلف مقابله می شد کلمه به کلمه پیشش استاد مقابله می شد مقابله که می شد بعد استاد یا شیخ یا مؤلف هر که بود. گاهی و استاد خود مؤلف کتابه گاهی وقتا شاگرد مؤلفه گاهی هم با واسطه ها همچنان استادی است که نسخه صحیح دستشه. مقابله که میکردند شهادت می دادند یعنی استاد. شهادت روی نسخه می که این نسخه مقابله شده است با فلان نسخه نسخه از و معتبره و به این شهادت انها گفته می شد انها یعنی وقتی کتاب تمام می شد گفتن انها یعنی به پایان آورد فلانی کاتر یا اون که قاری بود سماعا تسحیحا قراعتا به شکل‌های مختلف در مجالسی در فلان تاریخ هم کار به پایان رسید و این نسخه نسخه صحیحه من حالا چند نمونه از انهاات شهیدسانی رو برای کافی و تحذیب آوردم برای بخونم که ببینید مقید بودن که کافی رو و تحذیب رو با نسخه معتبر مقابله کنن و بعد از مقابله هم تحییدش رو بنویسن که معلوم بشه این ملاکه حالا بین الحلالن نسخه تحذیب شیخ طوسی به خط خود شیخ همچ نولی قسمت عمده پیش پیش بوده. خودش در کتاباش دوزیج رو تصریح میکنه توی مقاصد علیه و جاهای دیگه حالا به خاطر اینکه وقت میذاره من مواردش کار ندارم ولی اینکه نسخه یه به خط خود شیخ توسید داشته مسلمه پسرش همسا هم محالم تو منطقل جمان منطقل جمان فی, فی و الحسان خیلی جاها تصریح میکنه که اینجا به خط شیخ توسید تو تحذیب مثلا واو بود، فا بود، نمیدونم ازا بود، ز پر از نسخه اصل تحذیب رو شهیدستانی داشته پدر شیخ بهایی شیخ حسین ابن عبدالسامد کرده دیگران رو استنساخ کردن و بعد مقابله کردن با نسخه اصل و انهااتشون رو نوشتن و همچنین کافی رو مثلا انها تحذیب رو من برای تو نکدوت چه بخونم چون آخر هر بابی و هر کتابی انهایش رو می نوشتن این از شهیدستانیه تصویرش هم تصویر خطی شهیدستانه 20 سال پیش که ما این رسائل شهید کردیم تصویر خطی شهیدم اوموردیم غیر از تایپش شهید میخوان باید انهاو این زمیرش به پدر شیخ بهائی برمیگرده که کتاب رو پیشش خونده انهاو ادام الله تعالی تاییده و تصدیده و اجزل من کل عارفه حزه و مزیده قرائتن یعنی هم خونده و تصحیحن اونجا که اشتباه بوده نوسه تصحیح کرده و زبطن زبط یعنی کلمات مشکلی رو ارابوزاری و شکل مشکول میکردن که اشتباه خونده نشه و ضبطن فی مجال نسخه های قدیمی ضبط و شکل داره یه زیارت آشورا کتاب راجب زیارت آشورا ما چپ کردیم دو سال پیش از آقای حاصل محدی محمودی گلپایگانی توی اون تصویر حدود صد نسخه از نسخه زیارت آشورا هست نگاه کنید همش که مشکوله یعنی اینجور نبوده که لخت و اور فقط مجرد کلمات باشه و متاسفانه تو تصحیحات اخیری های اخیر که میگم در دوره که کتاب کتابو تصحیح میشه این هنوز رسم نشده که توی تصحیح ضبط و شکل اصل نسخه رو بیارن تا بگن در نسخه اینجور بود و این خیلی تأثیری داره تو معنا حالی یه رو سریع ازونم تو نحزل بلاغه در اون وصیت از ضمیر علی السلام بعد از ذوق از ذهن ملجم هست که فرمودن الله الله فیل فیل قران لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم توی این چاپی ها نسخ های چاپی هم جوریه که من الله خوندم لا یسبقکم فیل عمل به غیرکم ولی تو نسخ های خطی نحو بلاغه دو جور ضبط و شکل اینجا داره یکی لا یسبقکم یکی لا یسبقکم دو جور بعد که کلیم صالح شده این نیست که زبط و شکل نسخه ها اهمیتی نداشته باشه حالا شهید اینجا میگه قراعتن و تصفیحن و زبطن فی مجالسه آخر و های اوم الهحد لخمس مدین من شهر ربی الاخر سند خمس و خمسین و تس امهه نمصد و پنج و پنج کتب الفقیر و الله تعالی زین الدین ابن علی ابن احمد شامی العاملی آمدن لله تعالی مسلیان علا رسوله محمد و عله دیگه مستدفرا و پرا و تحریران و ضبطا قرائتا تحریر یعنی خودش اسنساخ کرده هم خودش اسنساخ کرده هم خونده و زبطن ضبط و شکل هم گذاشته فی مجالس اخره ها یوم الاسنینگ خاتمه شهر جماد الاخره سنه خمس و هم و تسع در از این انحاء شهید زیاد داره او کتاب کتابی که الان باقی مونده کافیه کل هم همجور برای کافیه کل هم شهید به مقابله کرده و انها داره حالا انهایشو بخونم یه حکایتی هم داره اونم از کنم خدمتون این انهای کافیه انها و احسن الله و توفیقه و صح حلائل کل خیرن طریقه قراعتن پس خونده کافی رو پیش شهید و زبطن زبطم کرده مشکلاتش رو و فهمن مشکلاتش هم تفهیم شده بهش فهمیده. فی مجالس آخر عشر شهر الاخر آم اربع و و 954. و, کتب و, و باز دوباره یه جای دیگه کافی. انها و احسن الله إليه و أصب نعمه علی فی مجالس آخرها یا و سابع شهر شهر جمادالوله سنت اربا و خمسین و به هرچنين نواره ديگه من دو مره خوندم از این انحاء هاي شهيد حالا این انها بود يجه ديگه داره بلاغه قراءتن ينافع فقط خونده دیگه تحرير رو ضبط و شكل و, و اينها كاريش فقط خوندنش بوده میگه فلان پیش من خون و تا اینجا رسید. تو کافی داشته پیششون. بله نسخه معتبر باشه بله نسخه معتبر داشته باشه حالا حکايتش هم ميگم خدمتتون بله بله خط داشتن چي خط كليني نام ولی نسخه خوب حالا حکايت چي ميگم خط كليني نميدونيم كي از بين رفته ولی نسخه خوب بوده که حالا نمونهش هم arz می‌کنم خدمتتون. یعنی ضبطی از خطی یا سپر و محلی که مقابله انجام شده یعنی خود کافه قوی نویسنده رو یا حالا این آخر کلاس در خدمت شما هستم علل و عواملش رو arz می‌کنم خدمتتون. توجه کردید از چه شروع شده ضبط؟ مخصوصا ضبط. النا ضبط یعنی شکل و اعراب همون اول که استنساخ می‌کردن تو نسخه‌ها بوده نه اینکه کاتب از خودش بگذاره. حکایت میکنه از نسخه ای که از اون می نویسد تحجیب هموندین؟ خود میشنید. کاتب بودشتنش که اعتبار نداره که از پیش خودش بذاره بله توی نسخه که بوده نسخه از همون رو حکایت میکردن بله اونجوری که می شنیده بله اونجوری که می شنیده زبط میکرده یا حالا دقیقا اونجوری که از معلف کتاب مثلا کلینی زبط کرده همونو می بودن مورد انها و فقط ان مورد دیگه بلغت المقابله به حمد الله و نه به نسخه المستنسخ منها مقابله با اون نسخهی که ازش اسم شده همینقدر بیشتر از این شهادت نهده باز بلغ مقابلتن و تصیحن حساب الجهد و تاقه فی مجالس است بلغ و به اصله المنغول من این فقط مقابله است یعنی اون اصلی که از روش نوشته شده این رو با اون مقابله کردیم حالا بیشتر از اون ما دیگه شهادت به تصحیح نمیدیم از روی فلان نسخه نوشتیم این مثل فلان نسخه است یعنی هر کیفیتی که اون داره اینم داره حالا تصحیح شده است اینم ضبط اینا رو نه اینه که بودما برای اینکه به اصطلاح مطمئن بشن که حدیثی که دارن استفاده میکنند و فتاوا می داخل طبقهش استنباط میکنند صحیح و درسته با نسخه های معتبر مقایسه کردن و تصحیح میکردند و استفاده میکردند. شهیدستانی رحمط حالا یه زندگی نامی خود نوشته داره خیلی شیرینه من با اینکه تثیح کردم و خیلی سال پیش از ساعت اون زور هم برایتون که سال بله سال 1180 چاپ شده بعد از اون تاریخم هر وقت که باز مراجعه میکنم میکنم چند باکندم زور دادم رها نمیکنه بس که هی دلش میخواد بقیهشو بخونه یه اتفاقی که بر افتاده توی یک از سفرهاش میگه که در کلان سفر، سفر به استانبول یه شب خواب دیدم که من و دوستانم پیش مرحوم کلینی هستیم حتی اسمم میاره میگه که دوستان من از جمله شیخ حسینه، نبدو سمت، بدر شیخ بهایی هم بود تو مجلس. اونجا ما از شیخ کلینی، کسی که توی این باشه میگه ما از شیخ کلینی در خواب نسخه اصل کافی رو طلب کردیم گفتیم نسخه اصل کافی به خط شما نیست، نسخه اصل کافی رو بدیم شاماید که فد حال بیت و آخره جلنا جز ال اول من فی قال به نس شامی قطعشو میگه. داخل و خونه شد و جز اول کافی اوعب ف فتحح او زن هوا به خطتن حسن معربن مصح و رو موضوه مکتوبتون به ظهر یا به زح یعنی با رنگ لاجوردی فجعلنا جعلنا و من کاون نس ختل اسب به حاض ح سفا فصورر نابزاکه کسیران لما كنا قبل ذلك قد ابتلينا به من رداءه النسخ قبل از این میگه نسخه های خوب نداشتیم کلینی که نسخه خوب رو آورد یه جزوشو خیلی خوشحال شدیم به کلینی گفتیم بقیه هزار رو بیار تو من بقيه الاجزاء فجعل يتعلم و من تقصیر الناس في نسخها و رداءه نسخهم به اصطلاح اظهار ناراحتی و دلتنگی کرد که مردم کوتاهی کردن در استنساخ کافی و اون اسنساخایی هم که دارن خیلی زیبا و صحیح نیست و قال اینی لا علم و عین بقيه الاجزاء همون یه دوزی که آورد او بقیه رو گفت نمیدونم و اینم خیلی ناراحت بود این جمله رو میگفت چرا کوتاهی کردید در اسنساخ کتاب بعد فرمود اشتغلوا بهاذ الجزء الا ان اجد لكم غيره اینا مشغول بشی تو بقیش رو بعد خلاصه رفت و سراغ بقیه اجزا و یه جزء دیگه آورد او به خط خودش نبود به خط غیرش الان مثلا قالب البرق شامی و توضیحاتی داد حالا قسمو فصله از تو خود کتاب بخونید این جلد دومه رسائل شهیدستانی صفحه هی بعد ایشون میگد که در همون جلسه ما یکی از دوستان شیخ زینودین فقهانی هم بود ایشون گفت که من یه جزء دیگری از نسخه اصل رو دارم با همون کیفیت نسخه اصل خود شیخ کلینی. و دفعه او علی به من داد و سررت و کسیرن منم خوشحال شدم. بعد میفهماید که این کتابی که زین و دن فقان که به من داد رفتیم سراغ شیخ گلینیو خرج نابل اجزایل شیخ الجلیل مصنف و حواجالتون فی مکانه ال اول و باز صحبت رداعت نسخ کتاب و تخصیر ناس شد. اون وقت من بهش گفتم شهید میگه یا سیدنا به مدینت دمشق رجلون من اصحاب نا اسمه زین العابدین قرابیلی قد نسخه کتاب که هازا نسخه تن فی قایت الجوده فی ورق جدید و جعل کتابی فی مجلدن کل واحدن بقدر کتاب شرایق و هازه نسخه المخالف و والمعالف من به کلینی گفتم شما نارحت بودی از اینکه که نسخه های خوب نوشته نشده نه این زین العابدین قرابیلی بسیار عالی استن رو و نسخه رو داره فتحلل وچه شیخ رحمه الله سرورن. چهرش باز شد و از حرال فرخ و فتح یدعی اظهار خوشحالی کرد دستشو باز کرد و دعا لهو به دعا انخفی خفی لم احفظ لقصهو سم منتبخت و دعا کرد این قرابیلی رو که به این قشنگی کاپی رو استنصاح کرده این حالا ماجرای خوابی شهیدستانی که با کلینی داشته این نسخه قرابیلی رو مطالع نایدیم ولی همین چارشنبه گذشته نجف مشرف بودیم در یه جلسه ای که دوستان فهرسنگارمون گفت این نسخه کافی که شهید وست میکنه اینو اخیرم پیدا کردیم دیگه توی جلسه مجال نشو مزیش بپرسم که کجاست و همثال اینها گفت این نسخه ای که شهید اینجا در ماجرای خوابش میگه به خط زین و قرابیلی از کافی هست اینو اخیرم پیدا کردیم خب این احتمام گذشتگان به مقابله و تصیح نسخ برای اینکه از اشتباه مسئ نسخه معتبر از نمیده بوده نسخه معتبر کافی همین نسخه قرابلی بوده دیگه شاینت از روش بود. خب، حالا احتمال این که شهید همه اسنساخاش از روی این باشه یا نه اینو باید پیدا کنیم نسخه قرابلی بیاد عکسش رو بگیریم ببینیم که همین بوده یا یعنی. نه چون نسخه که زیاد بوده از کتاب ترجمه کنید یه نسخه دو نسخه نبوده منتها می نوشتن اولش که ما این کتاب رو از چه نسخه اسنساخ کردیم کاتبش که بود در چه تاریخی بود هر از حضورم براتون که برای اینکه ما بتونیم کلامی رو به معصوم نسبت بدیم، باید های تلاش و کوششمون رو بکنیم یا اعتماد کنیم به حرف افراد ثقه‌ای که مقابله کردن با نوصه‌های مصحح یا بهترین نوصه‌ای که در دسترس، که بیشتر از اینکه ما تکلیف نداریم، بهترین نوصه‌ای که در دسترس هست یا خودمون مقابله کنیم یا ثقه‌ای مقابله کرده باشه و به ما اطلاع بده. فقط تو کسی های این باعث این نسخه ها ناب باب احتمال خطاای نسخه ها یا احتمال تعمد هم میره تو سرهای که مثلا تعمدی داشته نه تعمدتون ناسخین این کتاب ها معمولا مگر بعضی موارد هست یه ناسخ مثلا ناسبی باشه نمیدونم سنی باشه تعمدش خیلی کمه مواردی هست ناسخین مثلا گفتن که مثلا این نسخه ای که معروف اسم کردیم مثلا اسم امیر هر جا اومده به جه علیه سلام یا چی نوشته کرده من لاوچه اصلا تصرف کرده تو نسخه این موارد اینجوری خیلی کمه بیشتر مال خفلت و به اسطلاح سرعت در استنساخ و همثال این هست وقت ببینید حالا من موارد رو از بکنم خدمتون که اگر که نسخه های چاپی اشتباه بوده و توجهی نشده به این که باید به نسخه خطی و نسخه اصل مراجعه کرد مقابله کرد و بعد که نسخه اصل یا نسخه معتبر اصل که میگیم یعنی اونی که خود مؤلف نوشته بوده به خط خودش معتبر اونی که مقابله شده با نسخه معلف، آدمای وارد و عالمی مقابله کردن دقت کردن بالاخره با نسخه معتبری ما باید مقابله کنیم. موارد رو محال خدمت رو عرض می‌کنم که نتیجهش معلول این هست که این دقت و این توجه نشد نسخه رو از اون رو مدر یا جن تردید میکن بر م. هرث باید این حالا تفصیل داره. اینم بعد ازجل چقدر متون عذ میکنم. اون که یه کسی نسخه رو تصیح میکنه میگه ما اینو نسه اصر قرار دادیم مناشین نیست که نسخه اصل محفه یا چی. مثلا یه نسخه کامل ایی و خوش ختطره میگه ما اینو محور قرار دادیمبدنی رو با این مقابلی کرد. نسخه اصلی که ما اینجا جعلاب میگییم یعنی خط معله یا اونی که مقابله شده است خط محلف با اون یا نسخه معتبری است ولی نسخه از کتاب خیلی هست ببینید حالا یادم نیست شما توی مکاسب شیخ انساری مکاسب محرمه در بحث قنا شیخ انساری علالله الله مقامه مطلبی رو از کفایی سبزواری نقم میکنه، کفایی محل سبزواری بعد این مطلبی که از کفایی نقم میکنه تو کفایی چاپی نیست هر دو چاپ کفایه چاپ سنگی کفایه که همون ها چاپ شده چون این مطلب توی کفایه چاپی نیست محشین اینجا متعجب شدن و گفتن چه حرفیه شیخ خمسالی نغم کنه چرا دقت نکرده حالا به جای اینکه بگن احتمالاً نسخه ای که ما بهش مراجعه کردیم صحیح نیست بعضی هاشون به شیخ حمله کردن مثلا مرحوم شهیدی الا الله ما او که من حرف کفایی را همه شو براتون میارم ببینید اول و آخرش رو اینه کهی ترا ان المسنف یعنی شیخ انساری کهی فقیرف نقل با گوشه شیخ فقیر داده نقل فحصل من جهتی هی از جهت این تغییر ماترا من ال اقلاق و الاستراب حتی لا تقتر را به ازم شعن ناقل ول تراج الكتاب المنغول منف خود مردم شهیدی مراجعه کرده به کفایه چاپی ابد الحال اینکه کفایه چاپی از پروژه کفایه چاپی مطابق اصلش باشه یه ناسخی دادن ناسخ ناصق انسخ کرده و رفته ممکنه گاهی وقتا یه بزرگوار میگفت از گاهی وقتا بعضی نسخهای اصفار ظاهرن چاپ سنگرا یه ورق افتاده مراجعه اومدین سرخن که دوست چاپیه که بله کیلات تختر به ازم شان ناقل بل تراج الى کتاب المنقوله و بعدش میفهمه که تا بفهمه که لیسه فل کفایه کفای سبزیاری من الاستلال بهی اثر این فرمایش مرحوم شهیدی مرحوم میزا محمد تقی شیرازی علل هم مقام میزای دوم که تعلیقه داره بر مکاسب چاپ سنگی شده چاپ جدید ظاهرا هم نشه تعلیقه مختصری هم هست ایشون اینطور نوشته با احتیاط نوشته هاذا ولیکن ما رأیت و ما حکا حقده سر روح انل کفایه مارای تو محقق شیخ، فی باب الغناء فی مکاسب، و فی کتاب الغزاب و شهادات کفایه. بل لمیز که روايته علي بن جعفر عليه السلام فی شیء من البابین، روايته علي بن جعفر که تو کفایه اومده تو این دو باب کفایه، که توی مکاسب شیخ مده، تو این دو باب کفایه نیست. وللله این مقتضیت هم دقت، هم احتیاط میزا مأطقی شیرازیه که فور هم کسی رنگ به اشتباه و جعل و تغییر و اینا نکنه فهمیده و لعلهو قدسسه روح شیخ انصاری وجد هو فی مقام آخر من کفایه غیر از این دو باب که ما گفتیم صلا بود من این مختصای احتیاط همینه حالا در مقام آخر نیست تو همین مقام منتها تو نسخه صحیحه نه این ای که ما مراجع میکنیم و غلطه ایشون فهمیده فلا قدمن امام خمینی علی الله مقامه با اشاره به همین فرمایش میزایشی شیرازی در مکاس محرم فرمودند که وعن الكفایه ان فنحو و ان قال بعض المدققین ازل مدققین یعنی میزا شیرازی دوم ما که فل فلکفایه فی باب القناف فی مکاسب و فی کتاب القضاء و شاهزاد خب دو چاپ اخیر مکاسب هم اون چاپهای اولشو مندم اخیر نمیدونم یعنی چاپهای اخیرشو ممکنه درست کردم هم مکاسب چاپ انتشارات اسلامی جامع مدرسین که مکاتبه محرمه رو چاپ کردن، هم مکاسب کنگره شیخ انصاری مجمع الفکر تو هر دوتا چاپ اینجا گفتن که به حساب این توی کفایه نیست، این حرفا که شیخ نقل کنه تو کفایه نیست. در حالی که اگه ما مراجعه کنیم به نسخه خطی مصحح کفایه سبزواری که مقابله شده با نسخه اصل و تو کتابونای مرشی همین جا هم هست عین همین چیزی که شعر همساری نار میکنه بدون نشاید یک حرف یا یک کلمه کم و زیاد درش هست اون ناسخی که استنساخ کرده و کفایه بر اساس نسخه اون ناسخ چاپ شده اون ناسخ اشتباه کرده و انداخته یا نسخه ای که از روش نوشته خراب بوده و الان نسخه سبزواری نسخه صحیح حساب زواری که شیخ انصاری هم به اون مراجعه کرده این مطالبه رو و دیگه جلوی این اشتباهات گرفته یعنی این حالا سابقا که اصلا راست ن بوده ولی الان برای چاپ مکاسب چه چاپ مجله الفی چه چاپ جام مدرسین قاعدش این بود که در این جور موارد به نسخه خطی مراجعه کنند. به نسخه خطی چیه چون اینطور نیست که هر نسخه چاپ شده معتبر باشه و هر چه هست مبش اعتماد کنید این حال نمونه بود در اینکه جلوی اشتباه رو میگیره اگه مراجعه کنه آدم به نسخهای خطی یه نمونه هم از از کافی نه حرف کنم در کافی شریف هم چاپ مرحوم آقای قفاری و هم چاپ سنه‌ای قدیم و هم چاپ دارالحدیث با این تفاوت که چاپ دارالحدیث یه اختلاف نسخه تو پاورقی نرفتن که اونی که تو پاورقی نرفتن حلال مشکل هست ببینید در کافی شریف این روایت هست در کتاب الاشربه باب القنا حالا تو پرانتز و اللاله اینم عرض کنم هر جا به کتاب های حدیثی ارجاع میدید تو کار تحقیقی محصودم نه حالا توی کار عمومی و ترویجی برای مردم و اینها تحضیح کافی استفسار همه اینها غیر از ارجاع به جلد و صفحه عنوان کتاب و عنوان باب را هم حتما زید میکنیم چون خود عنوان کتاب و عنوان باب کمک میکنه هم به فهم حدیث و اینکه فهم معلف از این حدیث چی بوده؟ چرا توی این باب ورده؟ کلینی این حدیث که می کنم تو کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 22 حال نگاه کنید کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 22 محمد ابن یحیا ان احمد بن محمد ان محمد ابن سنان ان جحم ابن خمید قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام انا کنته لابو یعنی دیروز کجا بودی؟ فزننتو انهو قد عرف الموزه زننتو گاهی جواب معنی ایغنتو هم هست و اینجا ظاهرم به همین معنی باشد من فهمیدم که امام فهمیده من دیروز کجا بودم یه جایی ناجوری رفته بودم فقلتو جولتو فداک اینجوری بسن توجیح کردم گفتم دیگه گرفتار شدم و من بردن اینجا جولتو فداک اینی کنتو مررتو به فلانن رفتم سراغ فلانی فختبسنی فدخلتو الا داره رفتم داخل منزلش و نظر تو علاج جواریه نگاه کردن بکنی ؟فقالالی امام علی السلام زال که مجلسون لا ینظر الله علا اهله این مجلسی که تو رفتی مجلسون لا ینظر الله علا اهله امنت الله عزّ و جلّ اهل که و مالک این تو کافی شریف هم چاک در حدیث هم چاک قایقافاری همیج جرم دستو مات این حدیث رو شیخ خور عاملی هم در وسایل نقل کرده عرضت و حضورم براتون که وسایل شیع کتاب و تجار عبای ما یفتسبو به باب 101 حدیث 4 شیخ خور عاملی اینجا اشکا کرده که مرحوم کلینی حدیث رو تو باب غناه آورده خب اینجا رحصه از غناه نبود دوباره میخونم ببینید جایش غناه هست مرر تو به فلان فهتبستنی فدخل تو اله داره و نظر تو اله جباری. بنا کجا بود؟ ایشون میگه که چه خرد در ذیل حدیث رو وسایل فرموده هاذا لا تصريح حفيه بالقنا لكن فهمه منهل کلینی من هو ذلک کلینی ازش قنا فهمیده فاورده فی باب القنا و به همین جهت دو باب قنا آورده در کافی و قرینته انه لا وجهل تهدید لولا قرینه این که مال قنا اینه که اگر غنا در کار نبود چرا امام علی السلام تهدید کرد لعنه نظر ایلال جواری به ازن سیده نه جایزون میگه نظر تو ایلال جواری خواهی هم که با ازن سید و مالکشون بوده و قد ازنال راوی راوی هم که ازن داشت از سیده نه و مالک جواری بری این که نگاه کنه پس دیگه وجه تحدید چیه کلینی مرموم شیخ با اون شمول حدیثش و قرینه این که شیخ کلینی در باب قناع آورده فهمیده است که یعنی گفته که لابد کلینی از این حدیث گناه فهمیده قرینشم این تهدید امامه خب این نسخه کافی ما الان یه مال بیناله لالن اینم هرس کنم علاوه بر نسخ دیگر یک، نسخی که از یک حدیث ما مراجعه میکنیم بر فهم درست حدیث و ضبط درست حدیث حتما و حتما و حتما باید به نقلهای دیگر حدیث در کتاب های دیگه هم حتما مراجعه کنیم. این که به خاطر اینکه گاهی صحوی به اصطلاح ستی چیزی توی یک کتاب هست تو کتاب دیگه نیست. مجموعه قرائنی که کنار هم میذاریم فهم ما درست میشه از حدیث. ک اربعه یه حدیث که من تو تهظیم هست حتما باید نگاه کنیم تو کافی و فقیه و استفسار چه جور اومده. مکمله هم دیگه از نقل‌های های تو نسخه شناسی کمک نمی‌کنه شاید نه نه نه این این از باب دیگه است کردم اون غیر از نسخه شناسی گفتم غیر از نسخه شناسی برای اینکه ما مطمئن بشیم ما صدر چی بوده باید به سایر هم نگاه کنیم بله تو نسخه شناسی کمک نمی‌کنه حالا این بین الحلاله بود اگه فرصت شد یه شواهد بر این مراجعه به سایر کتاب‌ها هم میگم غیر از نسخه خب همین حدیث تو دعایم الاسلام قاضی نعمان عرض ثبت اسمایلی هم هست قاضی نعمان عرض ثبت مزورم براتون که محاصر کلینیه متوفای 363 کلینی متوفای 329 ایشون 366 محاصرم و منبعش هم منبع طولی نیست عرضیه یعنی اینجون نیست که دعامل اسلام از کافی نقل کرده باشه از منابعی نقل میکنه که کلینی نقد میکنه همین حدیث دو جای دعام اومده منطقه سند و غیر از اسم امام هست کرده توی کافی بود محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان ان جحم ابن خمید قال قال علی ابو عبدالله انا کنته تو دعایم الاسلام هست هست و از قادرسیان بگم ای خواستید مراجعه کنید دعایم الاسلام جلد دو سفیه حدیث و هشت حدیث 764 تو دعایم الاسلام هست و ان جعفر ابن محمد علیه السلام انهو قال لرجل من اصحابه توی کافی بود انا کنته توی دعائم هست عینک کنته فکر نمکنه عینک کنته امسه حالا امسرم داره دیروز کجا بودی قال الرجل فزننت و انبو قد عرفل قد الذي كنت فيه فهمیدم که امام فهمیده کجا بودم گفتم جول تو فداک مرر تو به فلان این مضمون همون مزونه ها حالا فقط گاهی کلماتش مثل انا و عینا فرم میکنه مرر تو به فلانه فتح بی و ادخلنی داره حالا فتعلق بی شد پارسی ما بیم آبیزون شد به من یا بگیم بندال من شد بندال شد و ادخلنی داره منو برخونه شم. خوب، خب این کلمه رو توی نقل دعایم اضافه داریم که توی نسخه رایج کافی نیست نسخه شافی و اخرج ایلی جاریتا لهو فقنت توجه فامودین؟ یه جاری اومد که فقال امام السلام علی السلام امن الله و مالک که مجلس ينظر الله اهله این نقل دائم یه نقل, نقل دیگه هم داره این این بعضی کلماتش توضیح بیشتری داره نقل دومش هم عرض که جلد 2 صفحه 207 حدیث 759 قبلی 764 بود این 759 تو نقل دومش اینه و انجا افران محمد علیه مسلم اندهو سعلا رجلن ممن یتسلو به سعلا انحالهی فقال اون شخص جل تو مر ربی فلانون امسه فأخذ بیدی این همون بندالم شد یا فهده وسنی فأخذ بیدی و ادخلنی منزله و اندهو جاریتون تذربو و تغنی تو اندهو حتی امسینا تا اصر اونجا بودم فقال ابو عبد الله, الله و وی اما خفت امر الله ان یاتی که و انت علی تلک الحال انه مجلس لا و الله اهله ببینید به وسیله این دعائم ما میفهمیم که علت اینکه کلینی حدیث در باب قناق آورده اینه که این اخرج علی جاریتا نه هم تو کلینی بوده حالا تو این نسخه های چاپی افتاده توی اون باب آورده این حالا تا اینجا توی کافیه دارالحدیث نگاه کنید تو مد همین آورده ولی تو پاورقی از یه نسخه قدیمی که مال زمان یحیی بن سعید یا نسخه یحیی بن سعید صاحب حجام فشرایعه تو اونجا آورده که در این نسخه این اضافه رو داره اضافه مضمونش همینه عبارتش این نیست ولی مضمونش همین است که از دعایم خوندین یعنی به وسیله اون نسخه معلوم میشه که چرا کلینی حدیث رو در این باب آورده. که بوده افتاده شمفه حدیث شمفه نه، مطمئنیم که بوده. چون توی اون یه نُسخه ای که هست معنا نداره که یه عالمی از بیش خودش توجه ها یه چیز اضافه کنه. نه، ناسخ های میگم میگن گاهی خود ما هم که چیز می نویسیم دیدین که یه ساعت یا چند تا کلمه از اون میفته. متوجه فهمیدین؟ اجازه رو زیاده ای حالا رو عدم رو توی این وارد نشید. مقاله با پیش فرض این مبنای ممکنه هم شمع حدیث شنافی کلیلی باعث شده باشه روایت در فقه نابورد آره اگه این قرائل رو نداشتین یعنی اگر نقل دعائم نبود و اون نسخه نبود میگفتیم شمش راجع فهمیدی ولی حالا که اونها هست دیگه نیازی به اون شمش نیست هم نسخه ای از کافی هست که اونو داره هم نقل دیگری در دعای اون جمله رو داره صداسی این نکته که وسطامون رو زمینه کنه اینکه بعضی موقعا هم که مثلا مقابله می‌کنم دارن وقال مقابله کرده بودند مثلا به تشخیص مقابل کننده در تفاوت معنا تصویر نداره، معامله رو انجام نمیده. خب نه، این به صلا... نه نه قدیم می نوشتن که به این کلمه رو نتونستیم بخونیم. این دو جور خونده میشه. تاجا فهمیدید؟ همه احتمالات می نوشتن. اینجوری نیست که من مثلا تشخیصم اینه که اینه همجور بخونم و بنویسم برم. می گفتن ظاهران یکی از معاصرین بود، یعنی گفتن که اینجوری ظاهران نه معروفه علما قزweenی آقا محمد خان قزweenی نه رفیقی قزweenی آم محمد خان قزweenی صحابی ها و اینا ایشون معروفه که بعد که به اصطلاح مبارزه از اشتباهات می‌دزه معروفه می‌گفته من بسم الله رم که مخمنی نویسدم و قرآن نگاه می‌کنم نویسدم <تصحیح> و بعد یه چیزی رو می‌نویسه میگه ظاهران بعضی‌ها میگه ظاهران ظاهرن دو تا زامز در این تهدیدان بیشتره بعضی‌ها سه تا زام یعنی میگه من این رو ولی یقین ندارم که این کلمه باشه سه بار و یعنی ظاهره نمیذاره که دقت کنی که های واقعا این بوده یا نه این دقت ها رو داشتن بعد نقاش و خیلی دقیق حالا نقاش بگیم باید خیلی دقیق نقاش گاهی وقتا حالا ناسخینی هستن که نقاش که میگن به این معنا که وارد نیستند و فقط رونویسی کردن رفته بعضی از نسخه ها هست که مثلا یه فعل را مثلا ید او ید شایین بر ست دوشته اوش اون بر ست که این نفهم میده همینجور به شما نقاشی کرده بسید نه نقاشی به این معنی ها نه باید کاملا متن رو بفهمه هر جارم نتونست بخونه و نفهمید علامت بذاره چند دقیقه وقت داریم که من نباره دیگر شواهد رو بگم وقت داریم بسیار به این نمونه از به اصطلاح توی مقابله با نسخه های خطی و نسخه های قدیمی به دست میاد دونه منشه هست کرده میگه که مال کفایه که مال کافی حالا این هم از کنم خدمتون که آیت اللهی شبیری میفرموندن درست هم هست با شواهد میفرموندن که نسخه های حدیثی که در اختیار علام مجلسی بوده صحیحتر و درستر بوده از اون نسخه های حدیثی که در اختیار مرحوم شخور را عاملی بوده. و وقتی ما مقایسه میکنیم این دوتا رو با هم میبینیم که نقل های علام مجلسی دقیقه تر و درسته با حاطر نصفه هاش حالی یه شاهدی بر این عرض میکنم و بعضی از بزرگان این نکته رو توجه نکردن و توجه به این که اجازات نقشش چیه هست انهااتی علامه خونده و فتمتون خیلی از انهاات داریم که بعد که شیخ و استاد انها رو مینویسه بعد میگه که اجاز سو روایت این کتاب را و این نسخه رو بر این عایشا دیگران که این نسخه رو و این کتاب رو روایت کنه اون که اجازه بر اساس و مستند به یه نسخه مصحح باشه خب اونجا دیگه یقین داریم این نسخه رو اجازه داده که قدیما و اوائل اجازات قضیه اینجور بوده یعنی نسخه رو می‌خوندن پیش مشیخ شیخ تصحیح می‌کرده اन्हا می‌نوشته اجازه هم میداده. کم کم به مرور زمان دیگه اجازه متوقف بر خوندن متن نشد چون کتابا شد کتابای مشهور و رایج دیگه لازم نبود که کتاب رو پیش شیخ و استاد بخونه تو استاد به اجازه بده همینجور تماشا میکردن شما اجازه روایت که الان هم که الانم میگن الانم نسخه اجازه روایت از آقایون می گیرن کسی نسخه ای بخونه کتاب بخونه اینجور نیست اجازه نقل روایت میدادن اون وقت بعضی از بزرگان فقهای معاصر تصور کردند که مثلا همه نسخی که پیش شخور را بوده نسخ با اجازه به ایشون منتقل شده اجازه داره شخور را اجازه اجازه نقل کتب عربه و غیره همه اینا را داره فکر کرن که اجازه داره شخور و اجازه مستند به نسخه نقلی که شخور را تو وسایل داره ترجیح دادن بر نقلی که تو خود نسخه تحذیب هست و این اختلاف نقد تو استنبات و تو فتاوا فهم نکرد. حالا مورد چه بخوام چرخ بدیم طول می‌کشه. در باب هست و همساله اینا. اون وقت بر اساس این و شاگردان اون بود و گرام هم همین کارو می‌کنه. از اون که این اجازهات شیخور مستندی به این نسخه ها نیست. نه نه. اگه به نسخه نباشه عمل اعلی. احسن. این تبرکه میشه دیگه. تا اینکه اومده کما که الان ما اجازه فقط برای تبرکه. توجہ فرمودید اجازات روایت که الان ما میگیریم وقتی وسائل اجازات رو که فرم اونجایی که مستنده به نسخه باشه اونجا البته یک فایلش از تبرک ازا فواید دیگه هم داره مثلا شخور رامیلی اجازه میده مثلا به من نقل کتاباشو یه فایلش اینه که میفهمیم می ایشون اینقدر کتاب داره اینقدر تالیف داره توجه فرمودید یه فایدش مثلا شاید سانی اینجا نگاه کنه اجازه شو بشه خسین عبدال سمت اجازه کبیره داره خب هم میگه چه کتابایی پیش من خوند هم میگه من این تالیفاتو دارم خب بهترین راه برای اینکه که معلوم بشه این کتاب تعلیف این آقا هست یا نیست اینه که تو اجازه خودش تصریح کنه حالا بینال هلالن چند وقت پیش اکی دو سال پیش شاید هم دیده باشید ا اويس كمال هيدريكي عباراتی میخونه از شیخ مفید راجع به شیخ مفید راجع به شیخ صدوق و خیلی گرد خاک میکنه. خب اونجا یه مقاله ما تو مجله کتابچی شماره 21 در نقد این چاپ کردیم در نقد همین فرمایش ایشون چاپ کردیم خب اون کتابی که نقل میکنه ایشون ازش اسمش تو هیچ یک از اجازهات علمای شیعه نیامده طازفه امید که بگن این کتاب مال فلانیه تو هیچ از انجام شده تو موسوی شیخ مفید کتابایی که قطعا مال شیخ مفید هم نیست چاپ شده و توضیح دادن گفتن چون نسبت داده شده به شیخ مفید ما تو موسوی آوردیم مثل اختصاص مثل نکته اعتقادیه فهمیدید تو مقدمه‌اشو که دیگه نگاه نمی‌کنن میگن چون اینا توی کتابای قبلی تو نسخه ها به شیخ نسبت داده شده ما همره یه جا جمع کردیم برای محققین نبرین که عوام مردم رو با این تحریک کنه ما مثلا دست بندازیم علما رو تاجبا بودید اختصار هست نکت اعتقادی هم هست ایست که دومشام قطعاً از شیخ مفید نیست تو همون مقالات مرضو شیخ مفید هم اثبات شده که اینوال شیخ مفید نیست خب اون کتاب اسمش تو هیچ یک از طرق اجازهات علما شیعه نیست حالا خود شیخ مفید که هیچ اسمش تو هیچ یک از کتاب‌های شیخ مفید کتابا دیگه اش نیست که بگه من در فلان رساله اینجور گفتم تو همین رساله هیچ اسمی از آثار دیگه نیست که بگه در فلان کتاب شاگردش نجاشی، شاگرد شیخ طوسی که این همه تالیفاتو اسوردن، اونو اس نوردن. تو نسخه های خطی همین رساله هیچ کدومش تسریح نشده که این مال شیخ مفید یا مال فلانیه. تو ریکامودی اولین بار تو قرن 11م شیخ علی عاملی نقی شهید تو دور منصور میگه من یه همچین کتابی برخوردم و نقل میکنم، نمیدونم مال کیه، شاید مال شیخ مفید باشه، شاید مال سید مرتضی باشه، هم میگه شاید مال اما مضمونم نمیخوره. اینکه میگم تورق یه جهتیه تورقیه این که, که شهیدسانی میگه پهلوان این در تو کتابو خون، میفهمید کتاب کتابو داره، وجود داشته نسخه داشته. هر سوال حضوران براتون که بله، مقصودم این بود. اون وقت اونجا دیگه نباید وقتی ما نسخه تهذیب شیخ طوسی که شهیدسانی مقابله کرده، با نسخه معتبر داریم، دیگه نباید اعتماد کنیم به نسخه وسایل که باش مختلفه. این شاه شاهد این بود. بکی طالعاً کافی دارون حدیث تو بعد میجا از یه نسخه نغ میکنه خلا نکته ای که کدوم اصل قرار بدیم کدوم نسخه بدل قرار بدیم ها شاخصاتشون چیه آها اینو برمیگرده به اون رشته تصحیح متون اون یه مطلب دیگه‌ست توجه حمید حالا یه کسی سلیقه‌ای داره یه نسخه رو میگه اصل بقیه اختلافات همه ریمیتو تو باورنی اغصالیقش به اصطلاح گزینشی و اختباسی هر جا صحیحی دید توی متن میاره بغیره به مختلف مختلفی تصریح حالا اینجا هدف اونه که ببینیم نزدیک‌ترین متنی که از امام علی علیه السلام ساده شده کدوم متن بوده گرایشی نه تصحیح متون اصلا خودش مثلا امروزه عرب‌ها که بهش میگن احیاء احیاء و تحقیق تو فارسی و به اصطلاح ها میگن که ویرایش انتقادی تا جاییه مخصوص حدیث هم نیست تو همه کتابا کتاب کلامی فلسفی تفسیری همه کتاب تصحیح میخواد تحقیق میخواد به روش امروزی و کتاب های روش تصحیح هم اله ماشاءالله نوشتن 50 60 تا کتاب فارسی و عربی در روش تصیح متون داریم یا تحقیق و الیای متون هم برگزار شده در این باره که اگه علاقه داشته ونا صوتشو بگیرید و گوش بدید نواراش هست حالا یه شاهدی بر این بیارم که همون نسخه بهار، بر نسخه بر نسخه علام بر نسخه شیخور مقدم بوده و مستخهه یه حدیثی رو شیخور رو عاملی در وسایل نقل کرده در باب جنا و چون وسایل بیشتر در دسترس علماس برای نقل احادیست به همون شکل مقلود تو رساله های قناه قدیم و جدید حتی رساله های معاصلین هم حسان من اسلم برم کتاب های معاصلین هم به همون شکل مقلود از وسایل نفت کردن شاید پنج شیش مورد آدرسه شد توی به اصطلاح کتاب قناه میراث فقری قناه جلد سه صفحه بیست و یک شست و هشت اونجا آدرسه شد دادن میتونی نگاه کنیم من حالا سریع مرد بکنم ببینید. در نجات در تفسیر عیاشی حدیثی هست که علامه مدیسی در بهار هم نقل کرده من اول صورت رو بخونم تا بعد اون صورت مغلوطی که مخونم چقدر به سالا به هم ریفته تو عیاشی هست بهارم به همیشه کان ابلیس اول من تغنّا. اول کسی که غناخون ابلیس بود و اول من ناحه نیاحت محکاس محرمه نیاحت زید. و اول من حدا خودی که برای شطور میکنند و اینا خب این, چه این اتفاق افتاد اولها لما اکل آدم من الشجره تغنا وقتی که اون شجره ممنوعه رو ادم خورد تغنا ابلیس فلما حبته حبوت وقتی از بهشت اخراج شد و به زمین حبود کرد حدا خودی خوندن فلما تطتر این نسخه بدلش استقرر استقرر بهتر باشه فلم مستقر على الارض نوح یذکر و موافل جنة وقتی که از آدم مستقر روی زمین نوحه خون و یاد بهشت یادش مینداخت بهشت را فا این نقل نج... نقل عیاشی و نقل بهار اول منتقا اول من نا. اول من حدا حالا تو وسائل هم چاپ های به استراسی جلدی سنگی قدیم هم چاپ 20 جلدی مرحوم قفاری هم چاپ سی جلدی آلول بید حبت این چاپ سی جلدی آلول بید دو تا برزن داره اون نسخه اولیهش اخیران با یه دوباره چاپ کردن اینی که من میگم مال چاپ اولیه سی جلدیه ممکنه دو بعدی درست شده باشه داره که کان ابلیس اول من تغنه اینش که درسته و اول من ناه تا اینجا هم درسته اون اول من حدا که توی بهار بود تو وسائل نیست ما اکل آدم منش شجره تغنه که این مطابقه همون بهاره حالا اینجا به بعدش توی بهار و عیاشی هست ما حبطه هبوط آدم ما حبطه حدا توی وساقیل شده فلمما حبطت ال الالعرض یعنی حدا شده حوا دیدن حوا الابو گفتن باید حبطت باشه بلا ما حبتت حوا و از ناحه لذکر هیمافل جنه یعنی حدا شده حوا حبتت هم شده حبتت اولمان حداش هم مثلا به کلی افتاده و به همین شکل هم تو چاف های هست هم توی موارد متعدد که هم وساحل نقل کردن و حداقل مثلا به نسخه بهار یا خود عیاشی اصلا خود وقتی تو به اصلاح در وصاهل، برای ارجاع بدی، آدرس بدی به عیاشی، همین که نگاه گونی آدرس آدرس‌دانی که گاونیز باید ببینی اختلاف داره یا نه. یک کلمه اختلاف داره، باید بگی تو با قرار میگی منبع ما اینجوریه نه اینکه فقط همین سرده بنویسی با آدرس بنویسی بری دنبال کرد. و این مصاحبات حالا این حدیث بود، گاهی جاها مصاحبات عجیب‌تری از اینا اتفاق میفته که نشون میده ما تو کارمون بعض وقتها خیلی دقت نداریم. یه موردی رو بگم، حالا همراهی بالاتری هم هست. به اصطلاح زرده داره. خارج از بحث نسخست ولی ببینید چجور تصیف میشه و کما زیاد میشه اصلا از حضورم که یک کتاب شناسیه به اصطلاح حضرت صدیقی تاهر سلام الله علیه ها آقای عبدالجبار فاین نوشتن که از فضلای عراقی هن. سابقا ایران بودن حالا بعد از سقوط صدام برگشتن عراق توی زریعه آقا بزرگی ایرانی تو کتاب ها هست. چون ایشون کتابای که چاپ بشه توی ایران، ایران، بلاد اسلامی معرفی میکرده یه کتابی که معرفی کرده توی نیم صف، توی ذریعه، توضیح هم نداره. فاطم کالات توی تداول فارسی ما میگیم فاطمه عره. فاطمه اره نوشته که در 40 صفحه در تهران چاپ شد. همین، دو ذریعه بیشتر از این نیست. آقای عبدالجواب رفایی که خب عرب بود و اطلاس کتابای فارسی و مثلا فاطمه عره و نداشت. این کتاب رو به نقل از ذریعه قرده در ردیف کتابایی که راجع به حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیها نوشته شده. آقا خب مثلا فاطمه است میگه، باحتمال راجع به حضرت صدیقه. خود خب باید مراجعه کنید به منبع ببینید چیه. حالا باز بینقل حال کنید که چه جوری یادم افتاد. یکی از فضلا کتابشناسیه. عرض خدمت حضورم براتون که کفایه اخوند خراسان نوشته. یک کتاب کفایه داریم به کلمه کفایی درش از مال قرن هشتم که در عرفان هم اسمرموی جلالی تصحیح کرد ایشون بدونه که مراجعه کنه که این همین که کلمه کفایی یا شرمی کفایی یا کفایی تو اسم کتاب بوده اوورده در ضمن شروع کفایه اخوند خراسانی اصلا خود که تو مال قرن هشتمه مایه هم, هم تصریح کرده قدیمی ما این من خدا هم مراجعه نکرد به اصل ببینیم چه کتابیه ببیشتره که فاطمه عره راجبه از الله اول تو مجله تراسانات چاپ شد بعد فکر می‌کنم توی کتاب مستقل به اسم معجم ماکت بن زهرا سلام الله ها. بعد به نقل از ایشون تو کتاب فاطمه و زهرا بحثت و قبل آخرش اومده کتاب شناسی به نقل از آیه رفایی بعد اون آقایی که ترجمه کرده فاطمت و زهرا باعثه قلب مصطفی را اومده به اینجا که رسیده حالا این هم نکرده خود اسم این کتاب هم عیناً بیاره حالا اگه نگاه میکرد به لغتنامه ده خدا یا اصلا منابع دست نویندستی نگاه کنید به خدا فاطم اره نوشته است کنایه از زنی بی شرم که حکایات 1001ش اونم توضیحش شده به خدا در لغتنامه یعنی هم اون زنه بدنام همین کتاب کتاب مزخرفیه و توی اون فاطمه زهرا باعثه قلب مصطفی ترجمه رسیدی به اینجا و اون آقای مترجم نمیشته است که فاطمه میبینم فاطمه عره لابود گفته اینکه عره ها بوده خب اگه عره ها بود میگفتیم میبینم اینکه عره هم نداره ها هم نداره عره چه فید چه چف... رفتی چف... به میبینم داره <تصفح> مراجعه چه <کنید>. فاطمه میبینم <تصفح> این وضع تحقیق و دقیقت ماست و مسامه هایی که ما داریم در نقض و اینها البته اینکه متلاوه داره چاپ میشه و هیچ کس هم این سریال در نیومده نه حال خوانندگان هم یا کمند یا اطلاعی اصطلاح ندیدن <تصفيق> همه هم در دستم ظوره بله برای اینکه همه به ساز تحقیق داره که که آدم به منابع اصلی منابع اولیه باید مراجعه کنه الان شما برای یه کار فقهی و استدلالی به هیچ وقت نباید به منابع دست دوم اکتفا کنید نمیگه مراجعه نکنید مثلا به نقل وسائل اصلا نباید اکتفا کنید حتما باید بیره سراغ نقل منابع اولیه و کسی به نقل منابع دوم سانویه اکتفا کنه نتیجه همین چیزا میشه حتما باید به منبع اولیه در دسترس دست مراجعه کنید که همثال این اشتباهات رخ ندهیم و باردی زیاده حال من ادبا به نمونه هر گردن خب شما وسائل رو اکتفا نکنید کافی و فقیه و استفسار و اینا رو هم ببینید نه نسخه ها رو همین چاپ ها رو اون بهترین چاپ بگرد ما نسخه به جای خود همین چاپ منمولی هم نگاه بیکردیم حالا این آقا اگه نگاه میکرد همین ده خدا یه این که زحمت زیاد یا هم به فهرستای های کتاب های چاپی سنگی و غیر سنگی از همه جا غیر از ذریعه اونها رو نگاه میکرد که بالاخره موضوع این کتاب چیه؟ تراجی فامودی؟ الان کتبی که همه نوزها رو دیدن کتب نورال آن الان ببینید سابقا زمان مرموم قفاری قبلا که چاب های سنگی میشد کافی و کتاب های حدیثی اون وقت به صلا هم فهرست و های خطی نبود حالا مجال نشد من راجع به این که توضیح بدن شماهای نسخه رو ببینید از کجا پیدا کنید چجوری پیدا کنید راهشیه چیه فهرست نگاری نسخه خطی چیه سابقا علما هم کتاب چاپی داشتند کتاب خطی سراغ می‌گرفتن هم دیگه شما کتاب کاخ خدا رحمتون الله عز و جل علامه زاده آمودی رو علاله مقامات شفا رو که تقسیم کرد الهیات شفا و نفسی شفا من در خدمت بودم و کارش انجام میدادام ایشون گفتم 10 تا نسخه ظاهرا حالا نفس یا الهیات یکی از رو تو مقدمه هست نگاه کنید ده تا نسخه مراجعه کرده هم ده تا نسخه تو کتابخونه خودشون بوده از جایی نگرفتم علما قدیم هم نسخه چاپی داشت هم خطی از هم دیگه سراغ می گرفتن نسخه کافی داریم میگه بله ما داریم پنج 6 تا از جمع میکردن کافی رو تصحیح میکردن بیشتر از اینم تکلیفو نداشتیم چون قدرت نداشتیم بذل و بس به همون مقدار محقق میشه. الان که به راحتی میشه از نسخه ها عکس گرفت فهرست در نسخه ها از اطراف و اکناف دنیا میشه نسخه رو دهیگه کرد الان دیگه برای تصحیح کتاب ها نباید اکتفاق کرده یه دو نسخه ای که دم دستمون هست باید همه رو استحاق کنیم توی این فهرست دناغ و فنخاب نزدیک هزار نسخه از کافی هست حالا کامل نیست هر کدومش یه بابیست یا تحذیب رو که الان در به اصطلاح ناجا فای حساب داران تسلیم گونان رو, رو ما تنظیم بشه این دوستی رو 1600 تا نسخه تنظیم رو بررسی کردند 1600 نسخه که از این نسخا خودم از این 1600 نسخه 150 تا رو انتخاب کردند که بهترین بوده و بعد... <تصفيق> چی <تصفيق> <تصفيق> عتبه عباسیه در ساعت حضورم براتون که همین جلسه ای که پریروز تا شنبه همون در بودیم خدمتتون یه بحث همین بحث نسخه های تهذیب بود 1600 نسخه رو شناسایی کردن اطراف دنیا بعضی این نسخه ها رو ما خودمون از گرفته بودیم بهشون دادیم از این 1600 نسخه حدود 150 رو انتخاب کردن برای مقابله و تصحیح الان که امکانش هست تکلیف همین همیناست یه جا اگر اختلاف نسخه تاثیر مهمی در فرفاده داشته باشه اون مفتی باید به نُساهای معتبرم مراجعه کنه. یک دور و برادم یادم از قدیما آیت به من می‌فرمودن که این کلمه رو توی حدیث تو نسخه تحریریه های معراچی نگاه کن ببین این کلمه این یا اون چون تأثیر داره رو فتوا. آما فارس ضروره که فهمی که فرعی تو بعد کتاب مصطفی که بعد مصطفی شوری می‌گفتن. بله. غرضم اینه الان که امکانش هست مختصرش همه نصفه. ولی حالا مفتی اونجا هایی که احتمال بده که مغیر معنا باشه، دسترسی به نسخه لازم نیست، همه رو خودش مراجعه کنه. با اینه که ارتباط دارن با تسلی، میگه شما نسخه‌های معتبر نگاه کنه اینجا چی هست. که آدم مطمئن باشه که ماصدر المصطوب علیه السلام چی چیزی. حالا فهرست‌های نسخهای خطی و چگونگی فهرست‌نویسی و به اصطلاح یه نسخه میخوام از جای بگیریم، همه‌چجور مطلع بشیم، همه‌چجور تهیه کنیم. اینا دیگه یه بحث مستفایسه که به اصطلاح این جلسه مجال نشوکی گفت‌وگو که فهمیدی مثلا الان تفسیر داخل قسمت رو همین و اول من من خب این مثلا توی یه نسخه ای نبوده. این مهمه بدونه که سلیقه مصححین مختلف قدیم ها هم تفسیر قدیم این یعنی تو تفسیر برهان به اصطلاح اون روش های اصلی تصحیح رو معمولاً رعایت میکردن به ذوق خودشون. رسم اینه که اگر یه چیزی رو ما از خودمون اضافه کردیم به نسخه تو نسخه ها نیست بین ماقوفه بین کروشه بذاریم خلا تاجافه بودین اختلاف نسخه رو گاهی وقتا تو یه نسخه بوده یه نسخه نبوده گزارشش تو پرانتز تاجافه بودین باید ببینیم تو مقدمه شیوه ی تصیحش رو گفته یا نه بله خیلی هم حساب کتابی سابقا نداره تصحیح‌ها اینا اینقدر زحمت داشتیم دارم چاپش ممکن نبود تص... تحصیل نسخه نمیشود به حضورم براتون که کپی و اسکن حفان هم حال راه دور نریم ما مونیتماری تصمیم می کردیم کداون فیزییه نه دستگاه کپی بود نه اجازه میدونن بیاری بیرون کپی بگیریم ما مجبور بودیم بریم خدمت برمه های اراه آمشت با ااراقه دستسی کشینیم می گفت نسخه بیارم رو بشیم دو نه مقابله کنیم دوره فردا دانشگاه تهران رفتیم اونم زمان جنگ بود و امکان عکس برداری نبود نه خودی که خوونه نسخه رو مقابله کنیم از حضورم برتون که اونجاهایی هم که میشد نسخه را امانت بدی که امانت می‌دادن الان امکان عکس و امثال این هر قدیمی‌ها که این امکانات نبود اصلا نسخا فهرست نداشت اولین فهرست که تو ایران چاپ شده بود و صد و خورده ای سال مولاستان قد این که چه کتابی کجا هستش که خبر نداشت حالا هست که اساسا 7000 جلد فهرست نسخهای خطی چاپ شده الان داریم یعنی 7000 جلد حالا کوچیک یا فهرست نسخه های یعنی معرفی میکنه نسخه های خدیه جهان را بله حفظار داره یکی از رفاه همون آقای متقید فهرست و فهارست نوشته آقای رحمی ریسته یعنی معرفی این فهارست فهرست و فهارست بله ن نسخه هم ای مارکشی که مخصوص فن نیست حفظ او الله آمین مهدو مارکشی میگن حوزه 5 میلیون ظاهران گیست وان کنند میفهمم 5 میلیون نسخه خطی اسلامی یعنی فارسی عربی ترکی یعنی که مربوط به ما میشه تو که دخناهی دنیا هست که قسمتی زیادیش آنو فریس نشده تو خود ایران هم فریس راه دور نرنی دخناهی مارکشی الان سیصد جل فریس اخیرا چاپ کردن رسیده به جلد شصت و سه هر جلدی هم 500 نسخه یا 400 نسخه همین الان حدود 20 هزار هم همین مقدار که فهرست شده هم مقدار فهرست نشده دارن تجربه هم بودین؟ و روزانه هم یا می نسخه‌های خوب های خوبی ها کسانی اهدام می‌کنن نسخه های فهرست نشده هنوز تو دنیا خیلی زیاده که مثلا یک احتمالش بر احتمال قویه چون تا همین سالهای اخیر بعضی کتابهایی که تصور میشد اصلا به کلی مفقوده پیدا شده توجه کردید کتاب همون حدیث کتاب های حدیثی مال قازنومان مسیح است ایزاش فقط می‌کردن که نیست پیدا شده و چاپ کردن احتمال اینکه کتاب های حدیثی حالا کلان حدیث یا ضمنش حدیث باشه ضمن این مفقودها باشه هست حاستمر حضورم براتون که شماها وقتی که این کتاب همون کتاب باشه خب این دیگه فوتوپل زیادی داره که چجوری تشخیص بدیم که این نسخه تعلیف فلانیه اون خیلی راه درازی رو باید طی نه خیلی زنیه درسته؟ یه درسته؟ نه یه جاهایش شدام یقین پیدا میکنه ولی یه جاهای هم ممکنه زل یه جاهایش شدام یقین پیدا میکنه حالا الان که امکانات هست الان ما با تراس نه سنت، اوتراث زیدیه، اوتراث اسماعیلیه بسیار از احادیث خودمون رو میتونیم ابهامش رو رفع کنیم، تکمیلش کنیم، توضیحش بدیم، روشنش کنیم. آقا الان خیلی یک مجله‌ای، یک مقاله‌ای که از فضالات توی داد به ما تو مجله کتابشی شیعه کردیم. هر سوال حضوران برتون که احادیثی است که از معصومین علیهم السلام نقل شده که تو های دم دستی و رایج ما نیست، تو بعضی از اون‌ها رو اونا هم استثاء کرد و جدا کرده آورده. تو مصادر زیدی زیاد داریم، مصادر اسماعیلی و سرائند سن... سنات هم زیاد داریم چون فقط ما اعتماد و اتکامون به سند تنها نیست هر قرینه ای باشه بر این که کمک کنه به اینکه ما اطمینان پیدا کنیم این از معصوم صادر شده اون به درد ما ولی اصلا این سنه‌ای نیشتم، یه نمونه بگم خدمتتون تو نهجو بلاغه از سمیر تو همون وصیت بعد از در بر خودن باید که بله الله الله فی اصلاح ذات بینکم فینی سمیتو جدکما چون خطاب امام حسن و امامونست فینی سمیتو جدکما یهول ملوم میشه کلام نبوی است و حدیث نبوی اصلاح و ذات البین یا سلاح و ذات البین افضل من آمت سلاح و سیان. تو نهز بلاغه هست حال این سند نداره چون حدیث نبویه شما نکنین منابع اهل سنت اله ما شاء الله سنیا همین رو از رسول خدا نف کردن حالا گاهی وقتا افضل من عامت صلات و سیامه گاهی وقتا خیران من عامت صلات و سیامه با اختلاف های خیلی کوچیک در مضمون که لطمه به اصلش نمیزنه به جوری که این همه نقلی که ما میبینیم تو کتابای اهل سنت یق رسول خدا صادر شده ولی هیچ سندندان نداشته باشه به این اینکه اولا هیچ دایی بر جعلش نیست آیه وقت از و بلاد و اشخاصه هیچ دایی بر جعلش نیست حضران و رسوله دان میکنه کنه اونا هم بیش ارتباطی با هم نداشتن ولی اون مرسل مرسل باشه به استرا سند و اسناد و اینها یه راه هست برای اینکه ما اینا رو پیدا کنیم حدیث صادر شده راههای دیگه هم هست ثانیه وقتی فانی این کارو تو مستند دیگه نشه شده که همین منابع اهل سنت رو به طبق وثائل آورده مسائل شیه هر شب از حضورم براتون که حالا اونا نمیدونم چیکار کردن. متوا یکی از کارهایی که مرکز نور دارن الان انجام میدن ضمن همین های حدیثیشون که خیلی هم کمک میکنه. یکی از کارهایی که کمک میکنه به تقویت حدیث و فهم حدیث اینه که ما احادیث مشابه و هم مضمون توی منابع اهل سنت، زیدی، همه همه‌اشو جمع کنیم و به کمک اونها ابهام و اشکال از احادیثمون خیلی رفت میشه حالا اون کار نور کار خیلی خوبیست نمیدونم الان منتجه رسیده و عرضه کردن یا رعیه وقتی مدخول بودن دیده بودم. اعزه کردن این چیز هم حلیث شیعو سنگی بله بله, بله. یه کاری هم مرموم آقای روحانی ها جامعه ایتی روحانی یه جلده شاپ شد جامعه در اسین کرده احادیث احل به فی کل و احل هر که از معصومین در کتب اهل سنت هست با بنده کردن اونها یه جلد چاپ شده اون کمک زیاده موجوده نسخه است شیعه نهج البلاغه تو اصلا تو دست نیست چرا اخیراً حسبن نسخه ای آقای بهسا فیض الاسلام علی الله که کار به اونها داشتیم فیض الاسلام می‌دین دام بیشترین نسخه ای که از نهج البلاغه چاپ شده نسخه فیض الاسلام فکر می‌کنم آقای قرامشاهی که اهل کتاب از و اهل این وادی‌ها توی مقاله‌ای نوشته بود راجع به فیض الاسلام ظاهراً نسخه یک میلیون نسخه تاکنون یعنی از اون زمانی که ترجمه کرده محمود فیض میلیون 1.9 از نهج البلاغه فیض الاسلام چاپ شده منتها اشکالی که می‌گی وارده متأسفانه در اوساط شیعی یعنی در جامعه ما چون نسخه صفی سال و تناور بوده و لغت معنا کرده خیلی و هملو نقل رساحت هاینا این رایت شده و همچنین عبدال در حالی که یه جاهایی هم تصدیف همدی کردن یه حالا مجال بسید بگیم تصدیف همدی امانت و امانت انداختن کلمات همین که خب ما باید خودمون اخیران چند تا شاف خوب از نهت و لارقه در آباده آقای مش حکار کردند و حاتبه او این قطره عوی و دیگران چاپ کردن به نس های خطی معتبری به اوننا مراجعه. کن. دو تا چاپ در اومده بله, بله دو تا چاپ درآمده با نس های دییم داره کار میکنه. حالا یک بحث دیگه هست چاپ فاکسی میوه کتاب آیاا چاپ هکسی نس های خبر حدیثسی رو به همون شکل خطی چاپ میکن مثل هم زیارت ها شورای که ما چاپ کردیم صویش را های مرعشی یکی چاپ کرده میرا مکسی یکی دو چاپ کرد چهار پنج نسخه. قدیمی نهج البلاغه که خیلی قدیمی است و من به همون شکل عکس خطی چاپ شده و خیلی کار خوبی هم هست. دراصل قدیم نسخه نسخش زیاراتش قدیم‌ترین نسخه اش براتون که فکر میکنم چون زیارت رو تو دو تا منبع نقش شده منبع اصلیش دو تا یکی کامل زیارات یکی مصباح شیخ طوسی مصباحی که کامل و زیارات کامل ش... ش... بله نه خب کامل تا... زیارات کامل جرأت نسخه قدیمی اصلا نداره قدیم ترین نسخه ای که از کامل زیارت الان هست مال قرن دهمه ترجمه بود الزام بود وضع رو نمیدونیم ولی مصباح المتعجب و خلاصه مصباح نسخه قدیمی داره نسخه ابن سکون هست مال قرن ششم و نسخه ای که 50 سال چقدر بعد از شیخ طوسی شده هم هست اون شو تاکرین کنده میشه نه ما صد تا دویست تا نسخه رو معرفی کردیم هر کلمه‌ای بوده معرفی شده از نسخه ها یه برگ دو برگ یا فقط زیارت ها شروع درش اومده تحاجیف هم از نسخه های قدیمی قرن هفته و قرن 8 و قرن, قرن ده تقسیم بنده شده این نسخه قرنشی این داره؟ بله اینا قصهش مفصل داره و محکم هم داره عبن... بله ابن تابوس اصلا نه بکنه ابن تابوس خودش میگه صاحب اقبال میگه که نسخه خط شیخ توسی از هز... زیارت هاشورا از مصباح یا مختصر مصباحی یادم یا نیست اون پیش من هست که اونم اینجوریه اصلا اینشون تصریح میکنه طب طب تصیفه نم... چی؟ هم نه اون کار قبلی بود شما این زیارت هاشورا که محسی کتاب شما چی چاپ کرد نگاه کنید البته الان تموم شده بعد که دوره تجزیز شاپ شد این همه این نسخه ها رو عکس اون ب... قسمت رو آورده با معرفی نسخه بله سلام بله، پروتوتایپ که تو کار تقسیم شما دار نیست. خیلی خب. راجع به یم میگه بهرادجفری. بله، نمی‌رسم دارم. بهرادجفری. باشه، متشکرم. باره سلام صوت داشتم بله. صوت کلاس تقسیم که فرادین خودتون اصلا من تدیز کردم که از آقای فازل بعد اون ضبطش رو پیدا نکردم یه وقت در اختیار خودمون مدادیم به یکی از دوستان رو نی ولی آقای صدرائی خویی تدیز کرده باید بپرسین که کجا ضبطش هست اصلا من تونجا آینه دیگه هم تدیز کردن آقای صدرائی باید بپرسین که کلاس هاش کجا از کلاس های این آقای بستش این اخلاقه سختی گفت درباره تحزیه الجب شد. ماشین نجفی دونه چطور اون پیدا کردن جدیدن یا این نجفیه عطایو شنیدم که میگفتن. یکی تو خونه پیدا کردن و خیلی ظاهرا قدیمی بوده. اونجاست چیزی مثلا نه از سفات که یک در بغداد صدام در دوره صدام همه کتابا رو جمع کردند نبردن بغداد، تو دار صدام میذاشن. حالا اسمو بزنم موزه بغداد یا متوف بغداد. شاید مخصوصش این بوده اخیرا اونا اجازه دادن که فهرست بشه متف بغدان که پنجه هزار نسخه داره فهرست نشده حالا قادر مخصوصش این باشه حالا کتابخونه یه گمنام اون... کتابخونه یه علما حسینی شوشتریه یه نجب کتابخونه یه اسکری از سامر را هر جا بوده نیروهای صدام جمعی کردن میبرن دار صدام و خوب هم کردن که حفظ شده عدوی نرزد حالا اسمش چگونه متحف صد متحف بغداد و, و داره فهرست هم. میشه بله این, داره فهرست, این میشه. داره فهرست میشه و آخرین نزدیکتر نه فهرست میشه و اکثر داریم. یعنی مثلا شاید یه سال باشه مم. یه سال نیم دو این که میشه نوجزدارن چهار پنج باهه. این که میشه شایعی هم ظهوران واشمن رفته بودن ازش رو یه بازیتی کرده بود. شفقت میکنم همه نوش که توی ا... اونجا پیدا شده چون تو کتابخانه بردار کتابانه های زیادی رو بردن maksudش اون که اونجا فهمیدن که فلان نسخه، اونم علی اینجا. رونمایی و رونیکسو برای که من می‌خوام هزاره بگیرم برای چی؟ برای چی؟ مخوان هزاره تاسیس حوزه عین نجف، حوزه شیخ که سال 48 نابوله تا بود ایران بردار شده. هزاره هزاره‌ی تاسیس حوزه عین نجف. اون وقت اونم تا هر وقت کارش منتظر هزاره سازه آره، خوب، خوب، خوب. اینو هم یه دیزی خونه. همون داشت بازی کرد. دارو. اجازه هستی روز ما رو ببری؟ ببین. چون اون رو ببر که برا، ها آ verschiedene پسند Han بواستacie丈 که